داستان چهارم مادر نمونه من مریم شاگرد کلاس پنجم ابتدایی زیر کرسی دراز کشیده بود کتاب و دفترش کنار دستش بود گربه کوچولوی او یک دست را زیر پوزه گذاشته بود و با دست دیگر با دفتر مشق مریم برمیرفت. پدر مریم اسم بچه گربه را صاحب منصب گذاشته بود چون بچه گربه دم درازی داشت و هر وقت می نشست، دو را مثل شمشیری که غلاف شده باشد در کنار خود قرار میداد. بچه گربه آرام نداشت و زود زود از زیر کرسی بیرون میدوید و پشت سرش هوای گرم زیر کرسی از لوله‌ای که با لحاف درست شده بود بیرون میرفت و فریاد مادر مریم بلند میشد. آهای مریم، آن سوراخ دروبرت را بپوشان. کرسی یخ کرده. الان سرما می‌خوریم. گور پدر این صاحب منصب هم کرده که نمی‌تواند یک جا بند شود، خودت هم که آرام و قرار نداری، بشین و کارت را بکن، مشقت را بنویس، میدانم که آخرش امسال صاحب منصب رفوزت می کند مرگم بلند شد و رفت صاحب منصب را از پشت پرده بیرون آورد و با خود به زیر کرسی برد لحاف را دور بدن گربه محکم کرد و سر او را از لحاف بیرون گذاشت. صاحب منصب ابتدا یک گوشش را از زیر لحاف بیرون آورد و بعد گوشک دیگر را و سپس تکانی به سر خود داد که گوشها را صاف کند. گوشه پرده تکان خورد و توجه او را جلب کرد. آهسته آهسته از زیر لحاف بیرون خزید و در حالی که دم بلندش به دنبال او روی گلیم کشیده میشد به پرده حمله کرد. با چنگ به پرده آویزان شد، از پشت به زمین افتاد، با یک خیز بلند شد و دم خود را گاز گرفت و از درد وق زد و به هوا پرید و سرش به نپش دیوار خورد. بالشی که مادر مریم به سویش پرتاب کرد به پشتش خورد و برگشت و بالش را گاز گرفت و چون فریاد پشت پشته مادر مریم بلند شد، از اتاق به بیرون فرار کرد. مادر مریم که زیر کرسی نشسته بود و پیاز پوست میگرفت، در حالی که اشک از چشمش سرازیر میشد گفت ای بلا بگیری ای خدا برایت نسازد hey. هی ها ببین ببین پرده را داغان کرد این ناخونهایت بشکنت هی hey. دم بریده بچیز و دوباره به سر مریم داد زد آن سوراخ آسیاب کنارت را ببند هر آتش و زغال داشتیم همش باد هوا شد و از بین رفت لعنت بر تو و بر پدر آن صاحب مادر مریم عشق خود را پاک کرد، تکه پوست پیازی را که در اثر پرتاب کردن بالش از روی سرش افتاده بود، دوباره روی سر گذاشت، چون فکر میکرد که پوست پیاز جلوی ریزش عشق را میگیرد. ساید بیرون رفت و مریم لحاف را مرتب کرد. روز جمعه بود، پدر مریم هلبیساز ساز بود و رفته بود برای دیدن یکی از دوستانش که مریض شده بود. مریم به یادش آمد که معلمشان راجب روز مادر حرف زده بود و گفته بود که برای روز شنبه باید چیزی درباره مادر نمونه بنویسند. اتاق پر از بوی پیاز بود و چشمش سوزش میکرد. ناصر برادر کوچک مریم با بچه های ها توی حیات بازی میکرد و گاه توپ را به در اتاق میزدند. هوای بیرون سرد بود. از پشت شیشه آویزهای یخ، از لب بام توی حیات سرازیر شده بود گنجش ها سردشان بود گرسنه نبودند و شلوخ میکردند مادر مریم ناصر را صدا زد که بیاید و زیر کرسی بنشیند اما ناصر گوش نمیداد عاقبت هوای سرد ناصر را مجبور کرد که دوان دوان با دستهایی چون لبوی قرمز به میان اتاق بدود اول توپش را زیر کرسی گذاشت و بعد خودش تا گردن به زیر تپید. هنوز چند دقیقه‌ای نگذشته بود که خورخورش بلند شد اتاق خلوت شد بچه ها دیگر در حیات بازی نمی‌کردند. صدای شلغم فروش دورگردی از دور به گوش می رسید آی علاج سینه درده بابام داغ شلغم مرهم سینا وردم تا داغ لذت داره مریم دفترش را پیش کشید و نوشت مادر نمونه من خیلی خوب است. او خیلی نمونه است. صبح زود از خواب بیدار می‌شود، با یک دستمال محکم سرش را می‌بندد چون همیشه سردرد دارد. سماور را آتش می‌اندازد. بعد پدرم را بیدار می‌کند. پدرم می می‌کند و با خدا حرف می‌زند. از روی لحاف چشمها را با دست می‌مالد و بعد لحاف را کنار می‌زند. میرود. و دست نماز میگیرد بعد از نماز یک کتاب کهنه ای دارد که باز میکند و اسم جن را زیاد از توی آن میخواند. مادرم سرش بیشتر به درد میآید و به بابام میگوید دیگر بس است دیگر برای همه مرده ها خواندی برای آنها هم که به دنیا نیامده ان خواندی برای آنها هم که از بار رفته اند خواندی حالا دیگر بس است بابام با تلخی کتاب دعا را می بندد و می کنار سفره می نشیند. بابام نان سرد دوست دارد همه ی ها را می خورد. مادر خوبم برای ما نانهای شب منده را روی منغر گرم می کند ما هر کدام یک چای شیرین داریم اما بابام یک چای تلخ هم دارد که می خورد هر کس چای خود را بریزد دیگر چای ندارد این است که ناصر هر وقت چایش را میریزد گریه و زاری میکند صاحب منصب چای ندارد فقط نان میخورد نان سرد یا داغ برایش فرقی ندارد صاحب منصب هم هر روز صبح صورتش را میشوید بابام به ما میگوید صورت شستن را از صاحب منصب یاد بگیرید یک روز دوم صاحب منصب توی چای ناصر رفت ولی ناصر چای خود را خورد و بعد هم با مشت توی سر صاحب منصب زد. صاحب منصب جیغ کشید و رفت ای نشست و دم خود را لیسید. مادر من هر روز صبح بر سر خرجی روزانه با پدرم دعوا دارد. پدرم میگوید فردا میدهم. مادرم به او میگوید عید نزدیک است و بچه ها لباس ندارند. بابام ناگهان نعره میزند. صاحب منصب از کنار سفره فرار می کند و همه ما ساکت میشویم. مادرم با حوله توی سر سماور میکوبد چنان ساکت میشویم که صدای خشخش سوسک ناصر از توی قوطی کبریت گوشه اتاق به گوشمان می رسد. پدرم به دکان می رود. مادرم اتاق را جارو میزند و آواز غمگین میخواند. و با پر چادر اش را پاک می کند و توی حیات توف می اندازد. خواهر بزرگم اکرم، به یک پیشکار نانوایی شوهر کرده یک خواهرم هم به یک مرد ترک شوهر کرده و رفته به شهر آنها مادرم همیشه برای این خواهرم که اسمش صدیقه است گریه میکند و موقع نهار و شام به یادش میافتد اشک در چشمش میآید و میگوید ای دخترک عزیزم ای صدیقه جان حالا کجا هستی قربان آن بچه‌های قشنگت بروم مادرم خیلی گریه میکند چند بار زیاد گریه کرد یک بار وقتی بود که شب عید بود و همه دور هم نشسته بودیم شام روشن کرده بودیم و من و ناصر با بچه‌های همسایه حسابی توی حیات بازی کرده بودیم من خیلی خوش بودم شب پلو داشتیم و بوی پلو اتاق را پر کرده بود ناگهان در اتاق به هم خورد و خواهر بزرگم اکرم آشفته حال و ناراحت در حالی که دیگی روی سرش گذاشته بود وارد شد پدر و مادرم بلند شدند و دیگ را از روی سر او پایین آوردند و او را که ایستاده بود و حرف نمیزد به گوشه اتاق بردند و خواهرم به زمین نشست و های های زد زیر گریه بعد فریاد زد و به سر و صورت خود کوبید. وقتی آرام شد اینطور گفت امروز احمد سرما خورده بود و مریض بود بابای احمد مقداری برنج خریده بود که برای شب ایک پلو درست کنم. احمد حواسم را پرت کرده بود چون از تب مثل کوره می‌سوخت. شب که برنج را کشیدم خمیر شده بود. بابای احمد یک لقمه برنج خورد و عصبانی شد و دو سه تا مشت توی سرم کوبید. مشقاویش را توی دیگ خالی کرد و دیگ را روی سرم گذاشت و گفت برو بده به آن پدر و مادر پدر پدرسگت تا بخورند و چیز پختن به تو یاد بدهند. هرچی التماس کردم هر چه قسمش دادم قبول نکرد و گفت اگر این کار را نکنی امشب تو را میکشم آخ عیننه جان به دادم برس. آخر مگر من چند بار پلو درست کردم که بتوانم مثل آشپزها ها پلو و چلو درست کنم بابام دیگه پلو را پیش کشید و ما تا توانستیم از آن خوردیم بابام هی میخورد و میگفت انصافاً بعد درست نکردهی، نمیدانم چرا شوهرت خوشش نیامده. پلویی که اکرم درست کرده بود خیلی خوشمزه بود، ولی نمیدانستم این بابای بدریخت احمد چرا خوشش نیامده بود. شاید آنها هم بر سر خرجی روزانه دعوا داشتند. آری، آن شب مادرم خیلی گریه کرد و صبح زود که بیدار شد، چشمهایش باد کرده بود و سرخ بود. چند روزی خواهرم نزد ما بود و بعد هم بابام دیگ را به مسگرخانه برد و سفیدش کرد و دست اکرم را گرفت و پیش شوهر او برد و قول داد که اکرم دیگر خوب پلو درست کند. یک بار هم وقتی بود که داداش بزرگم یعنی داداش محسن را که تازه معلم شده بود نصفه شب بردند. هفت ماه تمام او را ندیدم و مادرم مثل دیوانه ها شده بود و صبح تا شب به این طرفان طرف و انطرف می دفید. پدرم هم خیلی ناراحت و غمگین بود و یک شب هم که باقی کتابهای داداشم را جابجا جا کردیم مادرم به گریه افتاد ما حالا سالی دو سه بار به ملاقاتش به تهران می رفیم. مادرم گیوه می بافد رخت و لباس برای مردم می شوید یک جایی هم کار می کند و کارش پاک کردن کشمش است. بعضی وقتها هم مقدار کشمش به پر چادرش گره می زند می آورد و منو ناصر می خوریم. ننه پولهایش را جمع می کند. شیرینی میخرد و نگه می دارد. آب دهانش را گرد می و میگوید باید این شیرینی را برای داداشت ببریم به جز ما کسی را ندارد تا به سراغش برود داداشم بعضی وقتها برای ما نامه می و سلام میرساند و سفارش می کند که من و ناصر کتاب بخوانیم و بی سواد نباشیم بابام میگوید که کتاب نخانید و پیش مردم هر از دهانتان بیرون نیاید نگویید چون مثل داداش به سرتان میآید من نمیدانم چه بکنم ولی کتاب را خیلی دوست میدارم اما وقتی به ملاقات داداش محسن میرویم از پاسبانها و افسرها میترسم دهانم تلخ میشود و پاهایم میلرزند و با خودم میگویم به خدا دیگر کتاب نمیخوانم اما داداشم را که میبینم یک چیزهای خوبی در توی چشمایش هست که من دیگر از هیچ کس نمی ترسم به کرمانشاه که برمیگردیم مادرم تا مدتی خوشحال است. به من می‌گوید آن صاحب منصب را بیاورد تا بازی کنیم. و من مدتی می‌خندم. چون مادرم نوک گیسوی بافتش را تکان می‌داد و صاحب منصب با آن بازی می‌کند. بعد نوک گیسویش را مثل سبیل به پشت لبش می‌گذارد و صاحب منصب می‌ترسد و می‌گریزد. صید منصب هم روزهای پس از ملاقات خوشحال است و خود را به پشت بابام می‌مالد و دم درازش را زیر بینی بابام و روی سبیل او می‌کشد. من قصه های صمد بهرنگی را که داداشم برایم خریده برای مادرم میخوانم و او خوشش می‌آید. مخصوصا خیلی دلش برای ماهی سیاه می‌سوزد و گاهی هم که پول نداریم و نمی‌توانیم به ملاقات داداشم برویم مادرم برای ماهی سیاه گریه میکند. یک روز یک پاکت هلو برای داداشم برده بودیم ولی هلو را از ما نگرفتند و گفتن قدقن است. وقتی برگشتیم توی خیابان نشستیم. من و مادرم هلوها را رو میخوردیم و گریه میکردیم. من از هلو خیلی خوشم میآید. گلویم از غصه تنگ شده بودم اما هلو هم خیلی نرم و خوب بود. عشق چشمم روی هلو میریخت و آن را میخوردم و گریه میکردم و به پاکت نگاه میکردم تا ببینم چند تای دیگر هلو مانده. یک بار خواستم صاحب منصب را به ملاقات داداشم ببرم اما مادرم نگذاشت و گفت توی ماشین عذیت میکند و لباس مردم را خراب میکند. من گفتم می میکنم ولی مادرم قبول نکرد. من میدانم که صاحب منصب خیلی دلش میخواهد داداشم را ببیند چون داداشم مادر صاحب منصب را از مرگ نجات داده بود یک روز زمستانی داداشم توی حیات رفته بود و سه تا بچه گربه تازه به دنیا آمده در گوشه حیاط حیات پیدا کرده بود از بچه گربه ها دوتا مردند ولی داداش محسن مادر همین صاحب منصب را که نیمه جانی داشت به اتاق آورد او را مالش داد و یواش یواش حال آمد و بزرگ شد و صاحب منصب را با چند بچه دیگر به دنیا آورد نمیدانم که این بچه گربه را به ملاقات دادش محسن ببرم یا نه. من نمی دانم که مادر من که این قدر خوب است چرا هیچ وقت اکسش توی روزنامه یا مجله نیست و هیچ وقت مادر نمونه نشده است. وقتی سالی یک بار بند می اندازد خیلی هم قشنگ می شود. خب این هم برای عکس انداختنش خوب است و هم می عکس اکس خوبی برای روزنامه ها جاکرم هم هیچ وقت دختر شایسته نشد و حالا باید دیگی روی سرش بگذارد و گریه کنان و جیغ کشان به خانه ما بیاید. هر وقت بابام کارکاسبیش خوب نیست و خرجی خانه پس میافتد مادرم را کتک می زند. گیسوی قشنگ بافته شدهش را دور دست میپیچد و دور اتاق می گرداند. مادرم مثل گوسفند چهار دست و پا به دنبال پدرم به زور کشیده می شود و گریه میکند. ولی صدایش را بلند نمی کندند که مبادا همسایه ها بفهمند. ما هم گریه گریهکنان مثل بررهایی که مادرشان را برای سربریدن میبرند به دنبال مادرمان میدوم و گریه میکنیم اما به خاطر مادرمان جیغ نمیکشیم و دم دهان خود را میگیریم. وقتی که خوشحالی مادرم خیلی خوب میرقصد. زن همسایه با تشت دایره میزنند و مادرم رقص کردی میکند. و رقص هم بلد است. اما هیچ وقت جلوی پدرم نمی رقصد. پدرم هر وقت عصبانی می شود به ما میگوید گوید ایرق قاس بی آبرو و معلوم است که از رقص بدش می آید. بعضی وقتها هم می رویم به اتاق آن طرف که خانوم بادامزاده می نشیند و پرستار بیمارستان است و تلویزیون او را تماشا می کنیم. مادرم شب عروسی داداش حسن که راننده است خیلی خوب می رقصید. من هم رقصیدم ولی خوب شد که پدرم نفهمید آن شب غذاهای خوب خوردیم یک غالب یخ گذاشته بودیم روی یک صندوق چوبی برای شربت درست کردن پیرزنی کنار قالب یخ نشسته بود و دستش را زیر قطرهای آبی که از یخ میچکید گرفته بود و میخورد ناصر دوان دوان آمد و به بابام گفت که یک پیرزن دارد آبی را که از یخ میچکد میخورد پدرم خندید و گفت ای ندارد بیرزن دندان ندارد که چیزی بخورد پس بگذار چند قطره آب خنک بخورد ما تا یک هفته تمام منده پلوهای شب عروسی را هی گرم میکردیم و هی میخوردیم آنقدر پلو خوردیم که دیگر دلم از دیدن پلو به هم میخورد اما بابام میگفت باید بخورید تا اینکه ناصر دلپیچه گرفت و مریض شد روز بعد حالش بدتر شد بابام به ناصر فوش داد و گفت کم میخورید واوی زیاد میخورید واویلا نمیدانم این چه جور است که شما دارید. مادرم باز هم گریه میکرد و این بار به خاطر پرخوری ناصر و مریضی او بود. مادرم هر وقت صدای صرفه بابام را که از بازار میآید میشنود رنگش می پرد. دماغش باریک می شود و دستهایش میلرزد. آن شب که داداشم را بردند هم رنگش پرید. بابام هم رنگش پرید. و صاحب منصب هم ترسید و فرار کرد. نمیدانم چرا مادرم اینقدر از بابام ترسد بابام عصبانی است و ایراد می میگیرد. خدا کند که من دوچار مرد عصبانی نشوم. یه یا پسر علی بقال پسر بدی نیست با هم بازی می کنی و هیچ وقت عصبانی نمی شود و لوس هم نیست. از دکان پدرش تخمه کدو می و برای من میآورد. ولی من درس می و کتاب هم می تا فهمیده بشوم و به قول داداشم می کنم تا مثل مادرم بدبخت نشوم به یحیی هم از کتاب هایم می دهم تا او هم آدم خوبی بشود پلو درست کردن را هم خوب یاد میگیرم تا یحیی دیگه پلو را روی سرم نگذارد و از خانه بیرونم نکند شبها مادرم و پدرم توی رخت خواب آهسته آهست با هم حرف می زند. اسم داداشم را میآورند و مادرم آهسته گریه می کند و فینش را بالا می کشد. پدرم مهربان می شود و دلداریش می دهد. من دلم راحت می شود و خوابم میبرد ولی صبح دوباره با صدای دعوای آنها بر سر خرجی بیدار می شود. کاش می شد که این خرجی دست بابام نبود اگر مادرم گیوه نمی بافت، اگر رخت نمی شست، اگر کشمش باک نمی کرد معلوم نبودم وقت چه می شود. یک روز ناصر دسته هاون را دزدید و فروخت و پولش را خرج سینما و آجیل کرد. بابا مورا با قلیان کتک زیادی زد و یکی از ناخونه هایش را شکست. مادرم با دیدن خون دست ناصر بیحال شد. وقتی که به حال آمد خیلی گریه کرد و گفت من چه بدبختی بودم که به این دنیا آمدم؟ ای خدا من برای چه چیزت بودم؟ کاش مادرم به جای من گربه ای می زایید. و آن گربه خوش تر می شود. کاش مثل صاحب من صب راستی اگر دعای مادرم قبول می حالا مادر من گربه بود. خب روز مادر داریم ولی روز گربه نداریم. بهتر که خدا حرف مادر عزیزم را قبول نکرد و خودش شد. ناصر خیلی لجباز است و مادرم را اذیت می کند. اگر این ناصر نبود شاید مادرم کمتر غصه میخورد. ناصر گیسه مرا میکشد و به جای اینکه من فریاد بکشم او پیش دستی میکند و فریاد میکشد که مریم مرا نیشگون گرفته. یک روز سر سفره نشسته بودیم و نهار می خوردیم. یک استخوان قلمه توی آب بود که ناصر آن را برد. من میخواستم از دست او بگیرم ولی ناصر دستم را گاز گرفت. بابام ناراحت شد و استخوان را از دست ناصر بیرون آورد و پرت کرد توی حیات ناصر رفت و استخان را آورد و شروع کرد به مکزدن و لیسیدن. بابام متوجه شد و دوباره استخان را برد و انداخت توی سطل آشغال ناصر باز هم رفت و استخان را آورد. بابام استخان را گرفت و با آن چند بار روی دست ناصر زد و چند سیلی هم به گوش او زد و استخان را روی پشت بام پرد کرد. مادر گریه کرد و گفت آبگوشت خوبی درست کرده بودم اما توی دهانمان مثل کاکل شد و کفت شد. خدایا از این بدبختی نجاتمان بده شب که شد صاحب منصب از حیات توی اتاق دوید و پشت پرده بنان شد ناصر با دیدن صاحب منصب به پشت پرده رفت صدای پیفپاف گربه از پشت پرده بلند شد و ناله ناصر به گوش رسید وقتی از پشت پرده بیرون آمد قلمه زهری در دستش بود و گربه هم روی دستش را رو چنگ زده بود و خون می آمد خوب شد که بابام هنوز از دکان نیامده بود. دیگر از کسانی که باعث ناراحتی مادر نمونه من است، یک مردی است که مقداری پول به پدرم قرض داده و هر روز در خانه ما میآید و پولش را میخواهد. مادرم هرچه به او میگوید به در دکان برو نمیرود. تا صدایش از حیات به گوش می خورد، نانام رنگش میپرد و می لرزد و چادرش را بر سر میاندازد و میرود و آهسته با آن مرد یکی به دو میکند و وقتی برمیگردد آنقدر ناراحت است که من نمیتوانم به قیافش نگاه کنم. مینشیند کنار اتاق و آواز هورا میخواند و گیوه می بافد و از اشکش نخهای گیوه را تر میکند. نمیدانم این همه اشک را از کجا میآورد. اگر اشک مثل شیر یا شربت فروختنی بود ما حالا خیلی پول داشتیم. وقتی مادرم تازه ناصر رازاییده بود پستانش باد کرد و سوراخ‌هایش بسته شد. چند نفر از همسایه‌ها به پدرم گفتند که یک طول سک پیدا کند و بیاورد تا پستان مادرم را بمکد و خوب بشود. بابام یک روز طول سک قشنگی با خودش آورد. طول سگ را روی پستان ننم گذاشتند. مثل بچه ها مک میزد و با چنگهایش پستان را فشار میداد. جیق وداد مادرم بلند شد و بعد زنهای امسایه دست و پای طول را با کانه پیچیدند و هر روز کار طول همین بود. مادرم خوب شد و بابام طول را برد و دور انداخت. الان که دارم این انشارا می نویسم، مادرم رفته بازار تا گیوه را که بافته به صاحب کارش بدهد و برای ظهر نان بخرد و بیاورد. صدای خورخور ناصر بلا گرفته بلند است و من از دست او راحت هستم. من نام مقداری مربا درست کرده و توی دبه ریخته که برای داداش محسن ببریم. خیلی دلم میخواهد بلند شوم و یک انگشت از آن مربا بخورم ولی به خاطر داداش محسن عزیزم نمیخورم. بازار او بخورد و دهانش شیرین بشود و نامه های خوب برای ما بنویسد و خوشحال بشود. مادرم زن خوبیست و نمونه است و همیشه فکرش پیش ما هاست. یکی پیش داداش محسن که تنها در تهران است و مادرم خیلی او را دوست دارد و شبها توی خواب اسمش را میآورد، یکی هم پیش داداش حسن که مبادا ماشینش از گردن پایین بیفتد و همیشه آه میکشد و سالی یک خروس نظر می کند که داداش حسن تصادف نکند. یکی پیش آبجی اکرم که شوهرش بدخلاغ است و همیشه با او دعوا می کند. یکی پیش آبجی صدیقه که دور از ما توی شهر ترکا زندگی میکند و بچه های شیطان خوبی دارد و زبان ترکها را خوب یاد نگرفته برای من و ناصر هم خیلی قصه میخورد و هی می به من میگوید نکند روفوزه بشوی دیگر دختر بی سواد به درد نمیخورد یکی هم که برای ماهی سیاه قصه میخورد و گریه میکند و به ماهی خارفوش میدهد اما نمیدانم که چرا کمتر برای صاحب منصب قصه میخورد و گاهی هم او را با انبار می‌زند ولی اگر مادر من مادر نمونه امثال بشود نمیدانم وقتی از او بپرسند بچه هایت چه کاران چه می‌گوید یک روز به او گفتم مادر جان اگر مادر نمونه شدی به دروغ بگو که یکی از بچه هایت مهندس است یکی دکتر است یکی استاد ریاضیات است و یکی هم فوق مهندس است و بگو که ابجی اکرم هم استاد آشپزی است مادرم نگاهی به من کرد و گفت، بچه همین که هستن خوبند، داداش محسن هم از همه اینها که گفتی بالاتر است، استاد ریاضت کشم نمیخوام پسر من باشد. وقتی به ملاقات داداش محسن میرویم، رویم، از مردم اینکه که برای ملاقات آمدن خیلی چیزها یاد میگیرد و با آنها حرف میزند. می روی یک نیمکت و گیوه را که با خود همه جا میبرد می, می با و هی حرف میزند وقتی توی اتوبوس هستیم و به کرمانشاه میاییم از همان حرفها ها می زند و من میترسم که نکند او را هم پیش داداش محسن ببرد مریم انشا نوشتن را تمام کرد و سرش را روی دفترش گذاشت و خوابش برد در خواب دید که به ملاقات برادرش رفته و صاحب منصب را هم با خودش برده نگهبانها دبه مربا را نگرفتهاند و او با مادر توی خیابان نشسته و دارند نان و مربا میخورند اما مربا مزه نمیداد و گربش هم توی خیابان از زیر ماشینها فرار میکرد صاحب منصب از حیات به اتاق دوید و چون سردش بود یک راست رفت و در کنار مریم زیر کرسی خوابید و صدای خورخورش بلند شد